بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والسيد الموسلین و آله و صحبه اما بعد ما ته دا درست که دشته دا حدیث عبوری رو دشتی که گفتن که شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن هر جاکتی از شما وزو گرفت بس آب را دربینی خودش فرو ببرد سنشاف بکند، سبست سنسار بکند و هر کس از شما که خواست خودش رو از نجاست پاک بکند آخرین سنگش رو بس قرار بده، تک قرار بده، سرد قرار بده، زوج نکنه یعنی سه بار یا پنج بار یا هفت بار تا, جا، تا حدی که پاک بشه اون نجاست رو پاک بکنه بعد از قضایی حاجه بشه خ حکن نوع من فافت اد ای در حدیث داشتیم از اینجا شروع میشه مسائل بعدی قبل قبلی که این مسائل جدید را آغاز بخوریم در ساک می دست قبل قبل ثت کردن در ظرف بوسو گرفتن عادل وع گرفتن مثل یکی هست که ما بیان کردیم فک سنشاپ و سنسور و ممزه بود ما گفتیم که در مذهب مه مالکی و شاهههای واجب نیست یک سنتی سنت هایی که استنشاف بکنیم استنسال بکنیم و مطمئنه بکنیم در مذهب خنفی ها فرض در جنابت اما در گذر سنت و سخیح اینه که همون گفتیم مذهب احمد و ابن و ابو عبید و داود ظاهری که واجب هر تا انجام بشه حالا چرا واجب شد شما عدله را بخوایی عدله را یاد بگیرید اولا عدله ی امی امالکی و شانسیه در ترجیح دادن این مسئله ظاهر نفس آیه هست. در آیه بحث مزمزه باشه می نشده و همشه استنسار در نفسیه گفتن ما امر شدیم که حضور بگیریم آنچنان که خدا خودمان در قرآن سر جواب حنابل چیست؟ و ابن موزدر و ابو عبید و داود ظاهری چوبینه جواب داد. اولا گفتن که خداوند اگرچه در قرآن وضوع گرفتن را به ما یاد دادن لیکن طرز و طریقه این وضوع گرفتن تا کجا شسته بشه چطور شسته بشه این ارکان و این واجبات را محول کردن به فرمایشات رسول الله و انزل نایلی که لتبین لتو بیین لتو بیین لنه من زفر نازل کردیم این قرآن اگر آدب وزو هست, هست رسول الله وزیفش که چیز بیان بکنه شرخش بده و ما در شرح وزوی رسول الله چی داریم که رسول الله مدمزه و استنشاق کردن و هیچ روایتی بومن هیچ روایتی نیست که در آن مدمزه و استنشاق و نباشه سه بومن اینکه ما در این احادیث می‌بینیم در صحیح مسلم و غیره که رسول الله اهم میکنم فلیستن شق بمن مخریهی من الما فلیستن شق و لیستن و همش امره در این احادیث امره بازه چارم این چیزی که ما داریم در موقع عربی بینی و همچنین لب و دهان از صورت قرار دارند از صورت هستند جز صورت هستند بس همون که در بزر واجبند در غصنم همیشون واجبه که شسته بشه چون چون جزء ظاهر بدنیست ظاهر صورتیست که باید شسته بشه همونطور که در بحث گوش ها قاعدومت که گوش ها سرند و سکم صفم سر رو مقصد سر به خودش رو که واجب مقصد بشه خب این خلاصه بحث وقت و استنشام و همچنین استنسار که از بینی بود در نزد امام نسائی در سننش چینین میاره که سنت که با دست چپ استنسان بشه مستحب میدونن علمان و امام نسائی هم طبیبی میگذاره بابی میگذاره بر همین عنوان باب این که با دست چپ بشه معمولا پاکی ها در شهر با کار راست انجام میگیره با دست راست انجام رو انجام میگیره و کارهای های پاک کردن چیزهایی که الا نپاک با دست چپ صورت میگیره چه حالا بجه یایافتن رو پاک کردن تندان ها یا مثلا استنسار که حالا آبی که کثف شده از بیرون انسان بخواد بیرون بیاره و یا استنجا و تمامی مسائلی که استظامی پاک کردن کارهای راست با یا مثلا در بحث شدن مسجد با پای راسته یا دشویی با پای چرا بحث خوبی و بدی هست و همچنین دادن و برداشتن و کارهایی که خوب انسان مطلقاً با درصدات انجام بده جاهایی که بحث نفاکی و بوده با درست چپ رفته بشه یا انجام داده بشه اینم در بحث سنسا اضافه ای که گفتیم در, در سنن نفعه ایمده اما بحث شستن دست شستن دست قبل از اینکه انسان دستشو در زرک فرو ببره اختلاف علما در اینه که انسان میخواد بزرگ بگیره از خواب خواه شده آیا حق داره که دستش در آب فرو ببره یا نه تحریم یا فراحت داره و آیا این اینم متعلق به بعد از خواب یا در بیداری هم همین خواب و آیا این خواب خواب شب و خواب روز با هم فرقی دارن یا ندارن؟ آلا این اختلافاتی هست که در هر ستا مطلبی که ما گفتیم این با هم دارن اما نهی از وارد کردن وارد کردن دست در ضرب بعد از بیدار شدن از خواب امر رسول الله ما گفتیم در این بر چیه؟ برد. بر حجوبه حالا امر به انجام دادن یک چیز یا به انجام ندادن یک چیزی که چی؟ چی نهی؟ که نهیش میشه جا تحریم پس تحریم از چی گرفته میشه از نه امره به انجام ندادن یک چیز پس همونطور که در آیه قبل از کوزن هذره دله یخالفون عن امره بر حضر باشن اونها که از امر رسول و تپیشی میکنن اینم امر تشریعیه آداب نیست که بحث بحث تشریعه قبل از اینکه انسان موضوع خودش رو انجام بده درسش رو بشوره حالا علتها مختلف یا اینکه احتمال داره دست تلفن کثیف آب کثیف بشه که شر معمولا احتمال خاصی به نظافت و می دونه و یا اینکه بحث نجاست نجاسته و آب اندک احتمال داره اون دستی که در خواب ما نویدیم کجا رفته که در نص خود حدیث اومده و انه لا یدری این باث یدو احتمال داره که دست قسمتی نجاست بهش بشه یا وارد بشه و یا تضیید بشه که با وارد کردن اون دست در آب هاست و بشه آب نجست بشه بعض اونما این رو بعید دونستن و گفتن که که غیر ممکنه که یعنی آب نجس بشه با این نجازت هم میگیم که نه امر این دست ها برمیگرده به اون دستی که هست اگر دست ها انسان میبینه که نجازتی برش هست آب اندکی درش فرو برد شک درشیستمون نجاست انتخال پیدا میکنه. حالا این مسئله بر به این که این نهی رسول الله تحبودی یا تعلیلی اولا پس ما گفتیم اگر از خواب پا شدیم اول که با دستان من بود شدیم خبرتی که بارد زرب خوابیم با حالا که زرب شد زیر دوش یا زیر شیر لوله هست ولی خب البته فرض در یک جایی بودیم که زرب است پس ما گفتیم ظاهر امر رسول الله بر این نکشیم که نباید دست را در ذرک فرو ببرید. خب الان این وارد نکردن علت داره یا بدون علت برس صرف عبادت. بلن اختل اختلا اختلا. بعضی ها گفتن که تعبودیه بخاطر همین گفتن خواب و غیر خواب با هم فرد نداره. هر که خواست وزو بگیره ظاهری بر که در واجب قبل از شسته بشه واجب لیکن صحیح اینه که امر معلله علت داره این رسول الله این امر و بحثه به دونستن به اینکه که در خواب ما ندونیم دستمون به چی خورده باشه به نجاسته که اون نجاست سبب بشه اون آب نجست بشه پس بحث واضحه معلل است به خاطر همین اگر مشک کردیم در اون دست که نجس باشه و احتمال دادیم که این دستمون به نجساتی برخواد بکنه وارد آبی فولو کردیم بعد از اینکه بیدار شدیم اون آب قابل استفاده دیگه نیست دیگه اون آب فاسد میشه دیگه نمیشه از اون آب استفاده کرد که رنگ و شکل و حیثش نشده باشه خب مسئله دو میگه در که هست آیا بین خواب شب و خواب روز با هم فرق داره خنابله میگن این مسئله در خواب شبه ولی جمهور برای این که خواب شب و خواب روز با هم فرقی نداره یعنی هر وقت خواب شدی واجب چی دستاتو بشوری. مسئله بعدی آیا باید دست ها شسته بشه یا نه اولا شستن سباردن فقط در لفظ مسلم اومده این از اشتباهات گفتیم از اشتباهات امام مغزتی که این لفظ سلاثن را سلاثن یا سبار را نسبت داده به کی؟ نسبت داره؟ نسبت داده به بخاری نشطه که این لفظ سبار شستن در بخاری نیست متفق اون علیه نیست سبار شستن دست بعد از زیار شده نزده ها قبل از حضور سه بارش در نزد بخاری نیست. خب. حالا میمونه. این زیاده یه هست. در مسلم اومده سه بار. آیا با یک بار درد نجاست هست میشه یا واجبه که سه بار شسته بشه؟ بر حسب حوایت و نسایی و... همچنین اماموسیم ما میگیم اصل از رفتن عین نجاسته اصل بر اینی که خود نجاست از بین بره آلا یک بار شسته بشه یا دو بار از دو بار. خصوصا این که در دواره تلمزیم و داریم مراتین او سلاحه دوبار یا بار؟ پس بر میگه چی؟ به علت اون علت از بین بره یعنی اون نجاست پاک بشه هر وقت نجاست پاک شد چی میشه؟ خود به خود. اون چیزی که شرع از مقاصد بود انجام پدیده رو. یک از دلایل مهمی که در این حدیث هست اینه که آب اندک آب اندک نجاست پذیره. آب اندک نجاست پذیره حالا میاد دلده. در حدیث بعدی واضحاً صریحاً اختلاف علما را خواهیم دید که علمان چقدر اختلاف دارن در بحث آب اندک، بحث قلتین میاد و بحث بره و این مسئول دیگری که در بحث انتقال نجاست گفته میشه. حالا بحث اینجا، این نجاست یک زهبش اومد در آب کم نجس میشه. حالا که رنگش و بوش و تعمش عوض نشه. حالا این آبو گرفتیم میدونه قنطوش انداختیم. هنوز آب کن نشده. این آب میشه می با آشموزی یا بلپرد یک شخصی میگه از شما سوال میکنه. که آبی داریم در حوزمون یه گربه یه رفت توش شنا کرد اومد بیرون رو نه بردیم. بود زنده بود. این آب باقی یا یا موشی یا نمیدونم چیزی توش ریخته باشه. رنگی روزنگی. آیا این آب تاهره یا بوش عوض شده مثلا با یه چیز پاکی. با یه چیز فاکی، بوش عوض شده یه تینی رو یه کمی روشت کیخته. آیا این آب با غیر نجز از آبش خارج میشه یا و آب چند قسمت است؟ حالا خواهد اونده. لیکن اینو ما فقط اینجا بگیم. آب تا وقتی که از حالت اصلش خارج نشده با تاهر باشه نجزت باشه اون آب روی اصلش اصل باقیه. روی اصل تهریتش باقی میشه از آن به استفاده کرد. با یکی که رنگ دوستیک یا عوض شدن آب از ماهیتش خارج نشده میشه از آن به استفاده کرد. بحث نجاسته. نجاسته که یک ذره تیف شیر آب کم آب قابل استفاده میشه. اما اگر آن چیز تاهر بود نجست نبود اون آب مشکلی در آن استفاده میشه. و آن چیزی که از این حدیث کرده میشه اینه که نجاست. اگر نجاست سگ نباشه، سهن سگ نباشه، با سه بار فرسته اون نجاست از بین میره. رسولاتی فهمودند. سه بار بفرده دستش درسته؟ بس استحباب بر این امر وجود بر این یک باره. اشت برچیه از میره فنه نجاسته. لیکن سه بار مردتینه و سراته برچیه استحباب. بر استحباب. دو بار یا سه بار شسته بشه مستحب بس نجاسات حالا ایدار باشه یا هر چی باشه سه بار شسته بشه ما در حدیث بلیم فلیت سنشق به منخری منخر به دو تا سراخ به سوراخ بینی بیش میگه منخر سوراخ بهش سراخ بیش میگه چی؟ منخری فلیت سنشق منخری الماء ألا حكمة الشيء إيش ما سؤال إيش ما سؤال بقوله حكمة الشيء كما استنشق بقوله ما سار بقوله ماذا الحديث ذريم؟ دار لعنة أبو بكرية رضي الله عنه ميكان ميان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتسر ثلاثة فلينتسر ثلاثة فإن الشياطين أو فإن الشيطان يبيت على الخياشين شیطون ته بینی بهش میگه شیطون چون محلی نیست که محال نیست که انسان در خواب خصوصا الا میاد در بواسطه دیگه که بحث شیطانی که سبب میشه که انسان خوابش سنگین تر در شب میاد و اون گره خواب عقده که میبنده یا اضراری که مثلا این مباحثی که هست مباحث عقدی كده رشد در اخذ رد احادیث میاد مباحثش لیکن اینجا بحث استنسار و استنشاف بحث چیه؟ دفت کردن شیطان. ترض کردن اون شیطانی که اومده در خوابمون یا در اون چرتمون اومده سکونت کرده در روی پینیمون، در روی خیشوممون که ما با اون استنشاف، با اون استنسار بیرونش میکنیم بیرونش, بیرونش, بیرونش شیطان با آب سازگاری نداره. بخاطر همین ما به کسانی که رقیه میکنن میگیم روی آبی بخونید قرآن بعد روی شخص باشید. پاشیدن آب سنگین تر از چی از زدن پاشتتن آ روی کسی که زده شده بدتر از چی از زدن زدن به در شاید جسم می لب آسیب لیکن وسیله ت همون وسیله بیرون کردن همون که در این حدیث مده بود در بخوری چیه آه. این نه سرخی حالا انسان باید بین علتتون معلول با هم توافیت می‌دهند، بنده بکنند. الیچیه. مثلا الان ما بعد بحث سن شوخ و سنسر، هدف رسول الله عمارت عبودیش و عمارت تحلیلیش رو فهمیدیم. هم تعبودیه، هم تحلیلیه، هم بحث صرف عبادت از صورت خلود در سرداشت و بشه هم تحلیلیه این که شیطان در اونجا سکونت یافته و سکونت تزیروته و اونجا ساکن شده ما با این عبادتش بکنیم بیرونش بکنیم و خودمون رو از اون شیطان بیرون بکنیم. این وباحث تلقی این احادیث در چنبنی از استفاده می‌کنه خب این خلاصه بحث حدیث ابوری رضی الله تعالی و رحمته در اون بود حدیث 5 عن ابوری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا يبل لنا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به ولی مسلمین لا یقتسل احدكم فی الماء الدائمی و هوا جنوب ابو حررکی خاگان ترتونش گفته شد عبدالرحمن و مستخد دوسی این پنجمه حدیثی که ما ازش داریم میگوید که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند یکی از شما در آبی که راکت و جریان نداره ادرار نکنه سپس در آن غسل خودش را هم انجام بده در قبارت مسلم چین اومده؟ یکی از شما قسل خودش را در آبی که دائمه آبی که ساکنه انجام نده یکی از شما قسلش در آب راکت انجام نده آب دائم در اینجا داریم دائم وقتش چینی شد دائم همون راکده ساکنه دائم آب دائمه که در یک جا هست سکونت یا آب چشمه باشه آب بدر کباران باشه با این قید آب دریا و آب رودخانه ها خارج میشه با اجمع آب رودخانه و آب دریا ساکن دریا جذران مرد داره و آب رودخانه همچنان افزودی میشه و کم زیاد میشه در لفظه امام احمد با ابنه زي حبان بسند صحيح شنين دارين لا يبول لنا احدكم في الماء الدائم لا يبول لنا احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه أو يشرب ثم يتوضا منه أو يشرب كذا شمر ابي ادرار نکنه ابي کی استاد ہے ابي کی سکنہ در سکنہ سبع بعد ذوب يگیر بنوش محصد از این نه چیه؟ چیه؟ اون چیزی که ما لمبه می در این حدیث یعنی که هدف از این حدیث اینه که انسان با یه چیز ناپاکی به خدا متقرب نشه یک عبادتی را با ناپاک انجام نده سعی بکنه بهترین چیزها را استفاده بکنه بهترین آمها را استفاده بکنه وزر یک امر شرکی تقربه به خداونده یک وسیله شرعی است که برای خودش رخم و ارکان و واجباتی داره وزور هم همین شنید پس عبادت را باید به خاکی انجام داد این هدف از نحیه پس نهی در اینجا نهی هم از ادرار کردن در آبی که در یک جایی ساده و هم از اینکه انسان مؤمنی بیاد با ناپاکی وضو بگیره نه از دو چیزه و هم حالا در حدیث بعدی که داشتیم از یک چیز ناپاکی وضوع بگیره یا بنوشه هم مصلحت خودش است، هم مصلحت عبادت اون شخص یه قاعده فقیه از یا برداشت میشه ما گفتیم جاهای قواعد فقیه هست جاهای قواعد فقیه هست که ازش باید استفاده بشه از این حدیث برداشت میش از این حدیث قاعده تصیب برداشت میشه و اونم این که زرر, زرر عام مقدم بر زرر خاص من یک جایی ای هستم نمیتونم برم جای دورتر یا مثلا برم ادرار بکنم. خیلی سخت واسم من جلوب ادرارم بگیرم یک جایی استادم آیا حق دارم بر خدم زرر برسانم ادرار نکنم برم جایی دورتر یا اینکه اجازه دارم اونجا ادرار بکنم خیر حق ندارم ارار بکنم زرر خاص من زرر ببینم بهتر از اینکه چی مؤمنانی زرر ببینند حیواناتی زرر ببینند از اون آب نجس بخورد پس زرر عام مقدم بر زرر خاص ملح عام مقدم بر مسلحت خاص پس انسان مؤمن باشه مصلحت مؤمنان رو در نظر بگیره نه خودش اومدی وارد مسجد شدی مجموعه ای از مؤمنان هستن یک شخص از اونها شاید مثلا از شما اومد وارد مسجد حواسش غیر منه درقی همه شده حق نداری در پنجره رو باز بکنی به خاطر مصلحت فردی خودت مصلحت عام همیشه مقدم برچی چیز مصلحت خاص هست خصوصا که چاخنم را همه سردشون این بنده خود میخواد کله روشن بکنه و میشه آخر بذاره از این احاده چیلیم برداشت میشه؟ مثلحت عام مقدم برمثلحت خاص اون اشخاص سردشون میشه و سخون درد میگرن سرون میخونن این یک شمس این خیالش هم نید چربیش زیاد مشتاده سیاد عام چی شد؟ مقدم برمثلحت خاص این قاعده ی که ما ازش برداشت میکنیم خب اگر یک آبکم بود ساکن بود ولی که جاری بود ساکن اندر اندر بودی این چشمه‌ای آیا اجازه دیں در اون اندر الله الذي لا يجري یعنی بدان احد در الدائم الذي لا يجري آب الذي يجري الذي لا آبی که جریان نداره خب اللا اگه جریان داشت حق نداریم که ماموری میگه میگه حرامه چون آب کم هرچند که جریان رو داشته باشه او رو نج میکنه میاد در بحث آب اندک و آب بسیار بحثش خواهدم باز هم بازم، بحثش خواهد اومد بحث اختلاف در قلتین آیا که لازم، آیا لازمه که آب دو قله بر ای یا نرسه یک مسئله هست که در رضا گفته میشه حالا تا مسئله هست که ما مسئله ظاهری ها رو بایدون افشا بکنیم بگیم اینجا رسول الله از ادران رو کردن نه کردن یک کسی بره برای قائد قضای حاجتش فقط ادرانی که, که نجستش کمه جایز نشه اصباب اولا ایک چیزی که بود پره قضای حاجتش انجام بیده درسته ولی قیاس اولا ظاهری قبولش ندارن. مثلا نمیل حس سوال میشه. خدا در قرآن گفته به والدین فلا تقول لها ما افک. اف نگی. زدن والدین درست نگفته. بله؟ میگه بله درست. خب. چون خدا نگفته نزنید گفت که نگی. قیاس اولا نیست. اگر افت ما میگون اگر افک درست نباشه. زدن دیگه اینجا اگر گفت ادرار نکنید خب قضای حالت هم بدتر خب حالا ظاهر حدیث اینه شما نه ادرار بکنید روی اون آب ظاهری ها چی گفتن؟ گفتن اگر یک کتی کاسی رو دست گرفت را رو توی این کاسه ریخت بعد این کاسه رو وارونه کرد توی اون آب ایچه شکال نداره آب عوض نمیشه همین نحل هم داود ظاهری این. چون رسولات گفت که ادرار نکنید توی آب. نگفت ادراار نریزی چون گفته ادرار نکنید. پس ادراار ریختن. روی فنگی بنافره. اینجا آبه. یک دوشه ادراار ادرار میخواید بکنید بکنم. بخواد روی آب نباشد. هرچنگالا این ادراار را پیدا بکنه توی آبم. بیات ما میگیم نه. حکمت داره ا اگر رسول الله گفته که ادرار نکنید هدف داره علت داره علت چیه؟ آب نپاک نشه، آب نجس نشه. هدف پاکی و پاکی دیگه. این از جمله مسائلی هست که تذکر داده میشه که انسان متاثر به حتی که ظاهری ها اصل ظاهریت خوب انسان بی ظاهره حادیث باشه دیگه ظاهریت صرف عدم مراعات قواعد فقهی و مراعات اصول فقه و یا اساس حکمت های شرعی این خلاف حق و خلاف نقله. خب اولا این مقدماتی هست قبل دی که این احباب اتخارت من کامل بشه تمام بشه اختلافات علما رو بگیم در بحث آب ما آب دو قسمت داریم این تقسیم علماء دو نوره نور اول تقسیم علما که صحیح هم همینه مذبه حنفی هم رو همینه که آب دو قسمته یا طاهره یا نجس یا طاهره یا آب پاکه یا آب پاکه نجس ولی مذبه چنور چنینه که آب سه قسمته قول دومی دو که آب سه قسمته یا طاهره ذاتش طاهره ولی چیزی چیزی دیگری رو پاک نمیکنه، کنه، نمیکنه. برای خودش و یک آبی داریم تهور. اول طاهر، دومی تهور. طاهر، ذاتش طاهره و طاهرم میکنه. و آب سوم نجس، ناپاک پاک هم نمیکنه. چیزی که حقیقتش آب نیست. نه حدثی رو رفت میکنه و نه نجستی رو افسد شده صاحب ذاتش طاهر است ولی چیز دیگری رو طاهر نمی‌کنه برای خودش طاهر چیز دیگری طاهر نمیکنه. طهور خودش طاهر و چیز دیگری هم طاهر میکنه و نجس نه خودش پاکه و نه چیز دیگری رو پاک و صحیح و لاغله آبیا طاهر یا نجس ما دیگه چیزی به اسم طاهر آبی که نا پا... پاک کننده نباشه نداری اگر آب که کننده است اگر آب نیست یا شربت یا نمیدونم آب طند اون دیگه از آبیش خارج شده دیگه شمع و شربت بهش گفتیم چه دیگه بهش آب نمیگن کسی به آب شربت آب میگه دیگه آب بهش گفته نمیشه همون شربت دیگه آب طن قند آب طند دیگه آب تنها گفته نمیشه بس حقیقتاً یه مرکب هاشاک خودش پاکه ولی که ماده دیگری شده الان دیگه هیچ وقت آب نمیگن خب پس صحیح چی شد؟ صحیح اینه که آب دو قسمته یا طاهره یا یعنی طاهر همون طهر طاهر هم پاک هم پاک می کنه حالا آب مستعمل شده یه آبی الان آب راکدی هست یه چه چم شد من اومدم از ایچ روزو بگیرم در ایچ روزو بگیرم آیا این آب نجس میشه؟ آیا کسی دیگر حق داره از اون آب استفاده بکنی یا نه؟ در بعض احادیث داریم که الله نه کردن از اینکه کسی مثلا با خانمش قسلشون رو انجام بده خب چطور جنبنده بکنی بین این احادیث؟ بین نه؟ و بین اینکه رسول الله خودش با همسرانش رو انجام داده بحث آب مستعمل آب صحیح صحیح که آب مستعمل آب بوجود من استفاده کردم طاهر آب بلند به خاطر اینکه حدیث جابر در نزد بخاری بنیم در صفه ایبیه و اذا توضؤ كانوا يقتلون على وضوئه حیث نزد بخاری چنینه رسول الله وقتی که وزو میگرفتن اختتال میکردن یعنی تجون میوردن به وزیر رسول الله اگر آب نجس و طاهر نبود هیچ وقت صحابه سبقت نمیگرفتن که از اون آب روی تبرک بگیرن و حدیث بره بلوعه این الماء طهورو لایونجس و شیئی آب طاهر و چیزی نجسش نمیکن بعضی دیگر گفتن که نه طاهر آبی که استعمال بشه ظاهره یک آبی است که در عبادتی انجام شده دیگه نمیشه در عبادتی دیگری ازش استفاده کنیم سنگ جمرات یک سنگ گزدی نمیتونید دوباره مثلا نو برداری دوباره بزنی آیا این قیاس درسته نه قیاس درست نیست و در جمرات هم سنگ گزدی دوباره سنگ ابراد زدنی یا ابراد سنگه ابراد زدن به خاطر همین قیاسشون درست نیست و اگر قرار باشه آب با استعمال با استعمال ما برای غیر ما حرام بشه پس برای ما هم باید حرام بشه الان شما میگید من این خیزرکه دستم فرو بردم به سنشاق کردم دستم و فرو بردم صورتم شستم شما میگید دیگه فرد دیگری نه؟, نه حق نداره که استفاده بکنه خب من بردختی که دارم گذر میگیرم یک عضوی که شسته شد عضوی دیگری در پیش نمیاد دستم فرو بردم صورتم شستم خب آب صورتم توی اون آب دوباره ریختی میشه یا نمیشه؟ ریختی میشه پس یک عضوی که در عبادت خاصی باید شسته بشه دوباره اندکی از اون در آب آمیختی میشه آیا این آمیخته شدن بر من حرام میکنه یا نه؟ خیلی حرام نمیکنه کنه بس اگر بر من حرام نشه بر دیگران هم حرام نمیشه بر اثر حریتش باقی خواهد بود در مذهب حنفی ها چی که نجسه در مذهب حنفی ها این این آب نجسه گفتن چون رسول الله گفت لا یا گلن احدكم به حدیث استفاده که ما الدائم الذي لا یا جلیت و گفتن که این حدیث دلات اختران داره و نهی از غسل انجام دادن در آن آب، در آن آبی که دائمه، دلیل بر اینه که اون آب نجس شده. اون آبی که استفاده شده، الان مثلا دو, دو مبحثه. یعنی یک رسول ها میگه نهی کردن کدرار رو کسی و کسی بیاد، غسلش رو انجام بده. چون اگر غسلش رو انجام داد، حالا کسی ادرارش نکرد، اومد غسلش انجام داد. میگه میگن که در این حدیث این دلالت کیه که این شخص مصلحت خودش رو مقدم دارست و مصلحت دیگران در نتیجه این آب شده نجیس با شخصن خودش و بعد دیگران حرامش ما میگیم نه هیچ وقت با استعمال یک آب در یک عبادت شرعی آب از اصل تهوریتش خارج نمیشه نه یه صلی الله علیه و سلم نه به خاطر استعمال آب بلکه بخاطر چیه؟ به خاطر جنابت، به خاطر نجاستی هست که شاید به بدن ما چند در اون آب آمیخته بشه و حل بشه. ما در نزد مسلم از ابوهربه داریم که پیش گفته میشه خب این آب چه کارش بکنی؟ آبی که استعمال میشه. چیکار بکنین آوراندگه میگه یا بودم تماما مثلا در یک حادثه در بینی نشه خب کار بکنین یا تناولوه تناولاً تناولش یعنی با دست برش داره همونطوری که در بحث حالا اصل ام اومد رسول الله نا نمی کنن ابورای چنین باید کرد باید با دست برش داشتنی از اون آب به خودش در اون آب انجام بده استفاده رو خوب. خب رب بحث مسائل فقیقی خیلی دقیقی هست اولا ما اجماع نسلو کنید از اجماع تا مسائل اختلافی اجماع در این که اگر آبی زیاد باشه با یا کم باشه فرکی نداره آب کم یا زیاد رنگش یا بوش یا تمش عوض بشه با نجاستی اون آب نجس آب کم و زیادی کم یا زیادی با نجاستی رنگش یا گوش یا تمش عوض بشه نجس این اجماع اامبرا مذت نح حالا چی کم باشه گفت این چه زیاد باشه؟ پس با نجست این پی؟ با تحور با چیز پاک و با یه چیزی خردنی یا نمیده مسئله دیگه عوض و خاطی نکنه یه چیز نجستی موش مردهی توی تو آب بیفته یا گربه ای تو آب بیفته. چه مرده اون آب وقتی که رنگ و, و تعمش عوض بشه وقتی که عوض شد آب هم زیاد باشه اون آب نجست خب میمونه اگر آب زیاد باشه ولی این ستا وستش عوضشه اولا ما بگیم این اجماع که شده حدیثی که در این بار اومده ضعیف حدیثی که در این بار اومده آبی که این سه رنگش عوض چیزی سه وستش عوض بشه این سه در اون اومده حدیث ضعیفه و مسئله دومی که ما داریم اگر آب زیاد باشه ولی که تغییر نکنه آیا افتادن نجاست درون اون آب از تهوریتش خارج میکنه یا نه خیر اون آب روی تهوریتش باقی دلیل حدیث بئر بضعه که گفتن یلقى فيه الحيض والنتن اون آب چاهی که معروف به بضعه که درش آثار خون حیف بود و همچنین از اون چیزهایی نتن و کسی بس در بس که در آشت می ریخن بعد را سوال که سوال کردن فرمودن چی الماء و صحورون لا یا چه آب پاکه و چیز نجسش نمی حالا این آب حالا میگن علت رنگش خاطر نجاست نبوده این آب به چند علت تهوره اولا به خاطر این اینکه آب همیشه عوض می شده چون آب چهاره دو من رنگش به خاطر زمینیش نه به خاطر اون نجاستی که درش انداخته میشد. پس به خاطر این علت‌ها حتی اگه رنگ این آب عوض شده بود، الا کمی عوض شده بود، این آب روی اصل طهوریتش باقی بود و ان نجاسته کاری نمیشود. پس آب زیاد اگر نجاستی درش اضافه باشه و سه تا وقتش عوض نشه، اون آب پاکه خب الان اگر به آب کم بود حالا این کمی را صرف دارش حد کمی رسول الله سوال می از آبی که الماء و مایلوبه من از سبا آبی که حیوانات درنده از اون استفاده میکنن کند حکم این آب چیه اتقولوا در جواب انها ميجي شي اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث درسته اگر آب بدو قله برده دي جسد رحم لا ميقول خوب ظاهر القضيه چيه زياد باشه شباح حكم استاقه درسته كي بياد از آب بنوشه درسته آب بياد بوش عبد شد؟ میشم دو شود رنگ عبد میشه؟ نه تعمیش عبد میشه؟ نمیشه شکم این آب چیه؟ آه. یک شفت از شما سؤال میکنه آب حوضمون سگی اومد ازش نوشیده درست ازش استفاده بکنی؟ بله درست زیاده زیاده ببالا آب کم بود آب کم بود یک تشکی داشتید اومد سگی در اون نوشید حکمشیه نجافت انتقال پیدا میکنه نمیكنه نجافت انتقال پیدا میکنه خب یک اختلافی که هست در این قضیه ما اونم این که دی. مفهوم این حدیث اگر آب کمتر از دو قله بود قله قله تقریبا نزدیک به 50 سفر بیتر. نزدیک 200 تا اختلاف اثر اگر آبی داشتیم یک منبع 500 لیتری دقیقاً از 500 لیتری خود خله از تقلیل میاد آبی که کم ازش برداشته میشه برای ازفاده شخصی در خونه اون آبی روزه و مشک های بزرگ خوب. از این آبی که با زرف ازش برمیدارن تو کنه ها زرف ها هم مختلفه بر حسب ررفا شرع هم نیومده برای حدی مجرح هست ببانه این قلته. مفهومش اینه که اگر این آب کمتر از این مقدار بود سگی اومد ازش نوشید این سوتش عوض نشد نجست. درسته نجست. این گفته ایمام احمد و گفته ایمام شاخعی و صحیح هم همین آب کم آب کم اگر نجاستی در اون آمیخته بشه یا ریخته بشه هر هرچند وستش عوض نشه اون آب نجست میشه هرچند که اعتراض شده که این قلت معیارش مشخص نیست و هرچند که گفتن این حدیث،, حدیث مفهومش معارض با چیه؟ حدیث بر بضع علمه و طهور الله نجست روشه اونجا داری آب صاهره چیز نجستش نمی کنه عامه اینجا شما خواستش می کنید نه نیست پذیره. ما میگیم این تخصیص از ما از امر خارجی است. اول هرچند علماء نستیمین و خیلی از علمای علمان ترجیح میدن که آب این حدیث، امام من می‌تونم این حدیث را تأیید کنم که زیاده. ولی صحیح این که حدیث در نزاد و و ترمذی و همشیع ابن ماجه و احمد باستان صحیح و و این حدیث صحیحه. البته امیدوارم تصحیحش کرده. لیکن معناش بعدی از دو جما گفتن علام امنارزی میشینین میگه میگه که این مفهومه برداشته برداشت مخالف با ظاهر حدیث بره به در نتیجه مفهوم معنا نداره مفهوم رده منطق مقدم بر مفهوم مثل اصولی اگر مفهوم یه چیزی برداشت کرده از حدیث برداشت مثلا ظاهر لفت چیه آب دو خله ضرر نمی رسونه بهش نجا سفیل ولی اگر پایین بهش خله در اونجا آب absolutely هیچ چیز بی ضرر نمی‌رسونه. خب مفهومی که تو گرفتی ازش حدیث که پایین‌تره در حدیثی نیست. اگر پایین‌تر از ذُقلله بود دیگه تصدیق هست در حدیث نیست. در حدیث اینه که آب اگر ذُقلله رقیق جت صدیر نیست. دیگه حرف پایین‌تر از اون نیست. که کثیفیش نمیشه، میشه استفاده کرد، نمیشه استفاده کرد. لیکن ما می‌گیم در اینجا این مفهوم هیچ معارضتی با حدیث بئر بضعه، بئر نداره. بلکه یه خصوصیت خاصی بهش میده خصوصا با حدیث قبل با بعد قهد و حدیث بعدی که قاعده ما در این که نجاست انتقال پذیره حدیث قبل داشتیم که آب وقتی که از آب باشود کسی دستشو در آب فرو نبره چرا فانه لا یدری اینا با دستش کجا قاویده و حدیث بعدی که ما فهم داشت اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات او لا هن خب این بلوغ کلب و سگ سگ بیاد در آبی بنوشن یک زرفی یک آیا شما میگیدین آب شما که قبول ندارید خب ابن قیم و بقیه حنابل و حنفی ها و مالکی ها شما که قبول ندارید حیث کلته. خب یک آبی نجاست درش افتاد موشی مثلا موش مرده اومد یک موشی همیجوری فوری افتاد و خفه شد اما بیرونیش بردی آب نرنگش عوض شد نه عوض شد. و نبوش آیا این آب قابل استفاده هست نیست؟ در نزدونها قابل استفاده است؟ چون آبی نجست میشه که چی؟ این ستا وصفش عوض بشه درسته؟ وقتی کم و بیشی درش ندارن ولی شافعی ها به همچنین همبلی ها که صحیح هم همینه آب هرچنگ که عوض نشه اگر کم باشه نجاستی درش افتاده باشه چیه؟ نجست میشه خب کسی هستش کل درسته باشه در این مسائل تو اینجایی که خونده شد بس قدیه رو فهمیدید بحث واضحه یعنی بحث مطار آف چه موقع نجست میشه چه موقع نجست نمیشه خب سبحانه کلابه همدید سبحانه کلابه همدید